دوستان هر کسی یک صلح رو دوست داره اینطور نیست خب نه در همه موارد مایلیم به شما از همین جا در دانشکدی کوچک کتاب مقدس در ادامه درس‌های های سرکو خوش آمد بگیم عیسی به شاگردانش گفت که صلح دهندگان او جفا خواهند دید صادقانه بگم اون به نظر نمیرسه چیزی باشه که من بخوام انجام بدم اما معلم ما کمک خواهد کرد تعالیم شگرفی رو که ایسا می شاگردانش درک کنن و در زندگیشون کار بگیرن ما نیز درک کنیم. پس با هم به درس چالش برانگیز دیگه از کلام خدا گوش میکنیم خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهن زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ما تمزدگان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال فروتنان زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه نیکی مطلق هستند زیرا ایشان سیر خواهند شد خوشا به حال رحم کنندگان زیرا ایشان رحمت خواهند دید خوشا به حال پاک دلان زیرا ایشان خدا را خواهند دید خوشا به حال صلح دهندگان زیرا ایشان فرزندان خدا خواهند خواهند شد خوشا به حال کسانی که در راه نیکی جفا می بینند زیرا شاهی آسمانی از آن ایشان هست اینها هشت رفتار زیبایی هستند که عیسی در بالای کوه تعلیم داد که به وسیده اونها تعالیم عظیم خود در متا پنج شش و هفت رو شروع میکنه کنه که به اون معزه سر کوه می گیم همونطور که دیدیم اون یک معزه نیست بلکه یک تعلیم هست در ابتدای باب پنج اینطور می خونیم و او دهان خود را گشوده به آنان چنین تعلیم داد و در انتهای باب هفت می بینیم که مردم از تعالیم مقتدرانه او حیرت می کنند این مطالب تعلیم هستند و هدف تعالیم این بود کسانی را که می توانستن راه حل و جوابی برای مشکلات مردم دنیا شوند به کار بگیرند مردم پایین کوه اطراف دریای جلیل انواع مشکلاتی را که می تصور کرد داشتند عیسی کناره گرفت و افراد مشخصی را از بین اون جمعیت که همراهش بودند دعوت کرد که بالای کوه مشرف بر اون جمعیت به او ملحق شوند این زمینه است که اون تعالیم در اون داده شده ما به مجموعه این تعالیم موعظه سر کوه می‌گیم اولین کاری که عیسی کرد این بود برای کارآموزانی که قرار بود راه حل و جواب مشکلات مردم بشوند درباره رفتارها صحبت کرد هشت رفتار زیبا رو تعلیم داد که به وسیله اونها مردم نمک روی زمین و نور جهان می شدند. همون رفتارهایی که امروزه هم می توانند مردم رو نمک روی زمین و نور جهان بسازند وقتی روح القدس با فیض خدا این رفتارها رو وارد زندگی ما میکنه ما نیز میتونیم نمک روی زمین و نور جهان بشیم پس مایلیم از شما دعوت کنیم که یک بار دیگه در بالای کوه به ما ملحق بشید تا با هم به این هشت رفتار زیبا در ابتدای این تعالیم حیرت انگیز نگاهی بیاندازیم قبل از اینکه از خوشابهال ها رد بشیم، بیایید روی هشتمین خوشابهال تمرکز کنیم. خوشابهال کسانی که در راه نیکی جفا می بینند زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. وقتی به دومین خوشابهال نگاه می کردیم، گفتیم ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. سیستم ارزشی عیسی بسیار متفاوت از سیستم ارزشی ما بود. وقتی کسی رو میبینیم که مدت ها را ندیدیم و میفهمیم که از نظر سلامتی و موفقیت های روزانه در وضعیت خوبی هست همسرش سالم هست، خانوادهش سلامتی کامل داره، کارهاش خوب پیش میره و هیچ مشکلی در زندگی نداره، اون موقع میگیم خدای من، تو برکت یافته ای. اما وقتی کسی رو میبینیم که ده سال ندیدیمش، و میفهمیم همسرش را از دست داده و شاید یکی از فرزندانش را از دست داده و خودش از سلامتی خوبی برخوردار نیست و به خاطر اینکه کارش خوب پیش نمیره قصه میخوره اگر از ورشکستگی مالی رنج میبره احتمالاً به چنین کسی نمیگیم خوش به حال تو چون تو برکت یافتی خدا واقعا در حق تو لطف کرده کتاب مقدس میگه او میدونه ما چقدر تحمل داریم معلوم او میدونه که تو تحملت خیلی زیاده تو از خدا برکت گرفتی مطمئنم که او به تو فیض داده تا از عهده همه اینها بر بیایی آیا شما چنین چیزی رو به کسی میگید ما معمولا چنین چیزی نمیگیم چون سیستم ارزشی ما شبیه سیستم ارزشی عیسی نیست عیسی میگفت وقتی شما ماتم زده هستید به لحاظ روحانی کامیاب هستید وقتی ماتم زده هستید مورد تأیید هستید حالا او باز هم همون چیز رو میگه وقتی به خاطر ادالت آزار می بینید، مورد تعیید هستید، به لحاظ روحانی کامیاب هستید و واقعا می دونید که عضوی از پادشاهی خدا هستید. شما ارزش های مسیح رو در عهد جدید خواهید دید، نه تنها در اناجیل و در تعالیم و مثال و اعمال خداوند، بلکه اونها رو در رسالاتی که توسط رسولان نوشته شده نیز خواهید دید. شما اونها رو در سرتاسر تاریخ کلیسا خواهید دید به این سخنانی که پولس رسول برای تیموتاوس نوشته گوش کنید؟ پولس در آخرین سخنانش به این مرد جوان که پسر ایمانی او بود و همینطور پسر او در خدمت بود می نویسه اما تو از تعالیم و رفتار و هدف من در زندگی آگاه هستی و ایمان بردباری محبت و پایداری مرا را دیده و همچنین رنج آزاری را که در انتاکیه و ایقونیه و لستر دیدم مشاهده کردی. و میدانید چه آزارهایی به من رسید و چگونه خداوند مرا از همه اینها رهایی بخشید. آری، همه کسانی که مایلند در اتحاد با مسیح زندگانی خداپسندانه ای داشته باشند، رنج و آزار خواهند دید. بله، کسانی که تصمیم میگیرند عیسی مسیح را با زندگی خداپسندانه خودشون خوشنود کنند، به دست کسانی که از مسیح متنفرند، آزار خواهند دید. این تنها توسط عیسی تعلیم داده شد بلکه رسولان هم اون رو تعلیم میدادند و خودشون شخصا زندگی کردند اگر شما تصمیم بگیرید عیسی مسیح رو خوشنود کنید او رو خدمت کنید و انجیل او رو موعظه کنید باید در انتظار آزار و اذیت باشید عیسی در تعالیمش به ما میگه خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت کنند و جفا میرسانند و به ناحق هر گونه افترایی به شما میزنند خوشحال باشید و بسیار شادی کنید زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است. چون همینطور به پیامبران قبل از شما نیز جفا می رسانیدن. می تونیم این رو اینطور هم بگیم. وای به حال شما وقتی از شما تعریف می کنند. پدران ایشان درست همین کار را با پیامبران دروغین کردند. پس وقتی مورد آزار قرار می گیرید و می دونید به خاطر ایمان و معزتون هست به خاطر مسیحی بودنتون هست اون موقع شادی کنید و خوشحال باشید چون بدونید که بخشی از این پادشاهی هستید و بدونید که پاداش شما در آسمان عظیم خواهد بود در رسالات پتروس در انتهای عهد جدید چهارده بار او به رنج و زحمت اشاره میکنه محققین کتاب مقدس معتقدند که پتروس خطاب به ایمانداران در ایالات دیگر مینوشت جفا در روم شدت یافته بود پتروس میدونست که در ابعاد وسیعی جفاها به سایر ایالات هم گسترش خواهد یافت. او میدونست که بسیاری از این مردم از قبل به خاطر ایمانشان تحت جفا هستند و میدونست که بدتر از این هم خواهد شد. از این رو چهارده بار در رسالاتش به این موضوع اشاره میکنه. گوش کنید در قسمتی از رساله اولش در باب چهار خطاب به ایمانداران چی میگه؟ ای عزیزان از آزمایش‌های سختی که برای امتحان شما پیش می‌آید تعجب نکنید و طوری رفتار ننمایید که گویی امری غیرعادی برای شما پیش آمده است در عوض از اینکه در رنج‌های مسیح شریک شده اید، شادمان باشید تا در وقتی که جلال او ظاهر می‌شود شادی و خوشی شما کامل گردد خوشا به حال شما اگر به خاطر نام مسیح به شما دشنام دهند زیرا در آن صورت روح پر جلال الهی در شما ساکن است چیزی که پتروس می گفت این بود که وقتی شما از این رنج ها عبور می کنید جلال روح خدا در شما دیده می شه پتروس میگه امیدوارم که شما هرگز به خاطر قتل یا دزدی یا بدکاری یا فضولی دوچار زحمت نشده باشید اما اگر به عنوان یک مسیحی رنج می بینید ناراحت نشوید بلکه برای اینکه نام مسیح را بر خود دارید خدا رو شکر کنید و بعد در آیه 19 نتیجه گیری میکنه و میگه بنابراین اگر کسی مطابق اراده خدا دچار رنج و زحمت شده است باید جان خود را به دست آفریدگاری که همیشه به وعده‌های خود وفا میکند بسپارد و به نیکوکاری خود ادامه دهد ببینید چه تعلیم نیرومندی در سراسر عهد جدید است اعضای کلیساهای عهد جدید باید در انتظار رنج و زحمت می بودند. پتروس چیز دیگه‌ای در مورد رنج به ما میگه. برای به تصویر کشیدن یکی از دلایلی که چرا قوم خدا آزار می‌بینند، پتروس در آیه نخست باب چهار رساله اولش میگه: "پس چون مسیح متحمل درد و رنج‌های جسمانی شد، شما نیز باید خود را برای همین کار آماده سازید. زیرا کسی که درد و رنج کشیده است، دیگر گرفتار گناه نمی شود و تا آخر عمر خود بر طبق اراده خدا زندگی خواهد کرد. نه به هدایت شهوات نفسانی. گاهی ما به جفاها و رنجها که در اشکال گوناگونی در زندگی ما ظاهر می نگاه می کنیم و اونها رو به شکل طوفان عظیم مخربی می بینیم. اونها رو به شکل چیزی وحشتناک می بینیم. اونها ما رو می ترسونن. ما رو به وحشت می پتروس میگه گاهی خدا از چنین رنج در زندگی ما استفاده میکنه. خواه به خاطر جفاها باشه یا از منبع دیگری. رنج ها میتونن در زندگی ما تأثیر بذارن. شاید منظور این بوده و منظور عیسی هم همین بوده. اونجا که تعلیم میداد وقتی شما به خاطر پارسایی رنج میبینید در منطقه فیض قرار دارید. پتروس این رو در باب چهار آیه چهارده به زیبایی مطرح کرده و میگه خوشا به حال شما اگر به خاطر نام مسیح به شما دشنام دهند زیرا در آن صورت روح پرجلال الهی در شما ساکن است ببینید وقتی رنج میکشیم وقتی آزار میبینیم خدا گاهی ما را از طوفان های جفا نجات میده اما گاهی به ما فیض میده که از پس رنج و جفاها ها بر بیاییم وقتی ما در اون شرایط هستیم که رنج میکشیم و آزار میبینیم و خدا به ما فیض میده که به اون پاسخ بدیم خدا به ما فیض میده که از عهده اون بر بیاییم به قول پتروس در اون لحظه جلال روح خدا در شما دیده میشه یا میتونید اینطور بگید زیرا در آن صورت روح پر جلال الهی بر شما قرار خواهد گرفت در کتاب مقدس مطالب زیادی در مورد جفاه است. مخصوصاً بر اساس رسالات پتروس او اینطور میگه این یک دعوت هست او میگه عیسی سرمشقی برای ما هست یادتون هست که او رنج کشید وقتی عیسی رو پیروی میکنید آیا فکر میکنید که فقط دنبال جمعیت میرید؟ واقعیت اینه که عیسی مردم رو هدایت میکرد که صلیبشون رو بردارند او این رو به وضوح اعلام کرده بود و وقتی اون رو به صراحت گفت دیگه بسیاری از مردم علاقه نداشتند او رو پیروی کنند. اما به این توجه کنید، این در زمره هشت رفتار اساسی هست که کسانی که میخوان راه حل و پاسخ او باشند، باید داشته باشند. اگر میخواهید زندگی ای در مسیح داشته باشید، او را خدمت کنید و انجیل او را موعظه کنید، شما به دست کسانی که از او نفرت دارند آزار خواهید دید. پولوس این رو در دوم تیموتاوس باب سه آیه دوازده گفته. من معتقدم که این یک چیز مسلم در عهد جدید هست. اگر شما واقعا میخواهید مسیح رو پیروی کنید، باید در انتظار رنج و زحمت باشید. باید اون هشرفتار زیبا که عیسی میگه جزء طرز فکر شما باشه. باید در نظر شما باشه. وقتی اون رفتار زیبا رو در ابتدای درس گفتیم، اشاره کردم که این خوشابهال ها یک امتحان برای سطح بلوغ روحانی شما هستند. خب واقعیتش هم همینه. نمیدونم آیا شما نمیخواید خودتون رو به لحاظ روحانی با تمرکز بر این هش رفتار زیبا و وعده های همراه اونها چک بکنید. عملا هر خوشابهال سه بخش داره. اونها با کلمه خوشابهال در اکثر ترجمه ها شروع میشن که میتونه به معنی برکت یافته، و یا این عبارت در جایگاه فیض باشه که من اون رو خیلی دوست دارم کسانی که واقعا در جایگاه فیض قرار دارن و فیض خدا رو در زندگیشون دریافت میکنن کسانی هستند که این رفتارها رو دارن در اینجا مایلم شما رو به چالش بکشم بهتون نصیحت میکنم که این هشت رفتار زیبا رو حفظ کنید و بعد به طور مداوم اونها رو برای چکاپ روحانی خودتون به کار بگیرید هر روز صبح که بیدار میشید از خدا بپرسید خدایا آیا من در روح فقیر هستم آیا من به خاطر فقر روحی خود ماتم زده هستم آیا من میدونم که نمیتونم اما ایمان دارم که تو میتونی خدایا آیا من نرم خو هستم آیا یوغ تو رو در زندگیم بر می دارم؟ آیا امروز میخوام کارها رو به روش خودم انجام بدم یا به روش تو خدایا من گرسنه‌ام که بدونم راههای تو چی هست تا بتونم به روش تو عمل کنم خدایا مرا کانالی برای محبت خودت با قلبی پاک بساز بگذار امروز خادم صلح و آشتی تو باشم حتی اگر به خاطر اون آزار ببینم اونها رفتارهایی هستند که من و شما رو نمک روی زمین و نور جهان می سازن. قبل از اینکه جلوتر بریم مایلم وعده های همراه خوشابهالها رو ملاحظه کنیم قبلا گفتیم که هر خوشابه حال شامل سه قسمت هست. همه اونها با کلمه خوشابه حال شروع میشن که میتونه به معنی کامیابی روحانی یا در جایگاه فیض هم ترجمه بشه. هر کدوم از خوشابه ها با این اعلامیه شروع میشه که اینها اشخاصی هستند که در محدوده فیض هستند. خدا فیض خودش رو بر کسانی که این رفتارها رو دارن میریزه. این اولین بخش از خوشابه ها هست. دومین قسمت خود رفتار هست. فقیر در روح، ماتم زده، نرم نرمخو یا فروتن، گرسنه و تشنه ادالت، رحم کننده، پاک دل، صلح دهنده، جفا ما اونها رو بررسی کردیم. بعد هر کدوم از این خوشابه ها قسمت سومی هم داره. هر کدوم وعده ای به همراه داره. حالا مایلم این وعده ها رو سریعا ملاحظه کنیم. خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند. وعده که به همراه این داده شده چیه؟ پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. پادشاهی آسمان اونطور که اینجا بیان شده دقیقاً حکومت و حاکمیت خدا بر قلب انسان هست. عیسی در معزه سرکوه به ما یاد داد که دعا کنیم. حالا می به اون بپردازیم. ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد. پادشاهی تو بیاید. اراده تو همونطور که در آسمان اجرا می شود در زمین نیز اجرا شود پادشاهی آسمانی که عیسی از اون صحبت میکنه چیه اون دقیقا روش دیگری برای گفتن حاکمیت و حکمرانی و اراده خدا در قلب انسان هست وقتی در دعای شاگردان دعا میکنیم اراده تو همانطور که در آسمان اجرا می شود در زمین نیز اجرا شود در واقع داریم میگیم خدایا میخوام اراده تو در این ظرف خاکی من انجام بشه همونطور که در آسمان اراده شده و انجام شده. وقتی اراده خدا اونطور که نشان داده شده و اونطور که در آسمان وجود داره در روی زمین توسط انسان درک بشه این همون پادشاهی آسمان هست. اون پادشاهی روحانی هست. عیسی به پیلاتوس گفت همونطور که در انجیل یوحنا دیدیم به او گفت پادشاهی من متعلق به این جهان نیست. اگر پادشاهی من به این جهان تعلق می‌داشت، پیروان من می‌جنگیدند. اون پادشاهی روحانی هست و اون در قلب انسان هاست. وقتی ما اجازه میدیم خدا پرچم سفید تسلیم رو در قلب ما برافرازه و زندگی‌هامون رو تسلیم او میکنیم و تحت کنترل پادشاهی او قرار می‌گیریم. و او پادشاه ما میشه و ما اراده او رو به جا میاریم، سپس او ارباب ما و ما رؤایای این پادشاهی آسمان میشی. در انجیل متا تا باب شانزده عیسی به قوم خودش به عنوان یک پادشاهی اشاره میکنه. در باب شانزده هست که برای اولین بار او از کلمه کلیسا استفاده میکنه. بنابراین در واقع پادشاهی آسمان عنوان دیگری برای کلیسا هست. کلیسا چیه؟ واقعا چه کسانی کلیسا هستند؟ این مردم چه کسانی هستند که حق دارند خودشون رو کلیسای خدا یا کلیسای مسیح خطاب کنند؟ اینها کسانی هستند که میگویند عیسی خداوند است و اراده او رو به جا می نه اراده خودشون رو. او نه تنها منجی اونها هست بلکه خداوند اونها نیست هست. کسانی که تسلیم خداوندی مسیح میشن. و با رفتارها و ارزشها و انضباطهای او در این جهان حرکت می کنند و نشون دن که او کی هست و چی هست اونجا شما کلیسای او رو خواهید دید و میتونیم بگیم که اونجا پادشاهی او هست گفته شده کسانی که ماتم گیرند تسلی خواهند یافت این کلام زیبایی در کتاب مقدس هست در کتاب اشعیا تا سی و نه باب شما پیغامش اشعیا رو میبینید که میگه چطور قوم خدا تسلیم یک نوعی جراحی روحانی خواهند شد اسارت بابل گوشمالی خدا به خاطر گناهانشون و مخصوصا گناه بدپرسی در سی39 باب اول شما در این مورد میشنوید برخی از محققین اون رو جراحی روحانی مینامند که قوم خدا باید پشت سر بگذارند. اما با شروع باب چهل پیغام عوض میشه اشعیا باب چهل رو با این سخنان شروع میکنه قوم مرا تسلی دهید، آنها را تسلی دهید، به ایشان بگویید رنجهایشان به پایان رسیده و گناهانشان بخشیده شده است. و اونها بگید که به اندازه کافی برای گناهانشون تنبیه شدن و حالا خدا میخواد اونها را تسلی بده. در بیمارستانی که من زیاد به اون سر میزدم، تابله هایی در ورودی بیمارستان نصب شده بود که روی اونها نوشته شده بود، ما زخم رو میبندیم. خدا اون رو شفا میده جراحان میتونن زخمهایی باز کنند اما فقط خدا میتونه اون زخمها رو شفا بده اما وقتی جراحان جراحان خوبی باشند، زخم خوبی در بدن مردم باز میکنند زخم هایی که توسط جراحان در بدن انسان ها باز میشه باعث نجات زندگی های اونها میشه اما بعد از جراحی یک دوره استراحت و درمان هم هست کتاب اشعیا شبیه اون هست سی و نه باب اول مربوط به جراحی هست و بعد بیست و شش باب مربوط به شفا هست و این شفا با این کلمات شروع میشه تسلی دهید تسلی دهید در دوم قرنتیان باب یک گفته شده که وقتی دردمندیم وقتی رنج میبریم وقتی در عذاب هستیم وقتی امتحان میشیم یکی از راههایی که خدا اون رو نجات بخش میکنه یکی از راههایی که خدا از رنج ها و امتحانات و عذاب های ما چیزهایی برای نیکوی ما می سازه، اینه که ما مجبور میشیم تسلی بیابیم تسلی که تنها در خدا پیدا میشه وقتی بفهمیم که تسلی تنها در خدا یافت میشه چون وقتی کسی جز خود خدا نبود ما رو تسلی بده مجبور شدیم این رو بفهمیم بعد از اون ما تبدیل به خادمین تسلی دهنده میشیم همونطور که یک مبشر مثل این هست که گدایی به گدای دیگه میگه که کجا میشه نان پیدا کرد، خادم تسلی هم دلشکستهی هست که به دلشکستهی دیگه میگه کجا میشه تسلی یافت. وقتی ما تمزده ایم، تسلی میابیم. حالا وعده و رفتارهای های دو به حال اول چیزی به ما میگن. گفته شده تمام مذاهب دیگر دنیا را میشه اینطور خلاصه کرد. انسان دنبال خدا میگرده، اما مکاشفه یه یهودی مسیحی رو میشه اینطور خلاصه کرد. خدا دنبال انسانها میگرده و نیز گفته شده مذاهب این دنیا به ما میگه که شناختن خدا، پیدا کردن خدا، رسیدن به خدا مثل بالا رفتن از یک نردبان هست. در بسیاری از مذاهب باید در تمام طول عمر از این نردبان بالا رفت و بعد بالاخره امیدوارن در آخرین پله خدا رو پیدا کنن. مکاشفه یهودی مسیحی میگه نه اینطور نیست. نردبانی هست اما شما مجبور نیستید از این نردبان بالا برید که به خدا برسید. خود خدا از نردبان پایین میاد و شما رو در پایین ترین پله نردبان پیدا میکنه. او در پایین ترین نقطه زندگیتون شما رو ملاقات میکنه. اونجا که دیگه هیچ امیدی برای زندگیتون ندارید. شاید اون همون چیزیه که دو به حال اول با وعده هاشون به ما میگند کسانی که واقعا در جایگاه فیض هستند کسانی هستند که در روح فقیرند کسانی هستند که ماتم زده و غمگینند کسانی که شاید حتی از اینکه که میبینند در روح فقیرند رنج میکشند اما این مردم تسلی رو که در رسیدن به خدا و رسیدن خدا به اونها در موقع رنج پیدا میشه کشف میکنند و این افراد هستند که کلیسای حقیقی خدا محسوب می شند. اینها پادشاهی حقیقی خدا هستند. وعده ای که به همراه نرمخویی و فروتنی میاد اینه که نرمخویان و فروتنان وارث زمین خواهند شد. این عبارت تنها یک عبارت مربوط به عهد جدید نیست. اگر اون رو در کتاب مقدس پیگیری کنید خواهید فهمید که اون یک عبارت مربوط به عهد قدیم است. بارها در مزمور سیه هفت به اون اشاره شده و بسیاری احساس می کنند که این عبارت نقل قولی از اون مزمور هست. وارث زمین شدن یعنی صاحب تمام اون شدن. دروغ بزرگی که به نظر می از اعماق جهنم میاد اینه که خداوند وحشتناکه و اگر شما اراده او رو انجام بدید یا تسلیم اراده او باشید وحشتناکترین زندگی رو خواهید داشت. این یک دروغه. دروغی از اعماق جهنم حقیقت اینه که خداوند نیکو هست، راه های او کامل هست، اراده او نیکو پسندیده و اراده عالی خدا برای زندگی شماست. دروغ بزرگ اینه که اگر شما اراده خدا را انجام بدید، به نوعی زندگی مصیبتباری خواهید داشت و چیزهای زیادی را از دست خواهید داد. حقیقت اینه که اگر تسلیم اراده خدا بشید و اراده او را انجام بدید، وارث زمین خواهید شد حیات ابدی خواهید داشت این معنی واقعی اون عبارته عزیزان آیا زندگیتون رو تسلیم مسیح کردین؟ آیا متحد شدین که شاگردون بشین؟ آیا زندگی ابدی رو تجربه میکنین؟ متاسفانه وقت امروز ما به پایان رسیده امیدواریم که شما ترتیبی بدین تا در جلسات آینده نیز در ادامه مطالعه موزه سر با ما همراه باشین و یاد بگیرین که چگونه میتوان شاگرد حقیقی ایسای مسیح شد. دائما اینه که این درس ها شما رو در زندگی ایمانیتون به چالش بکشه و شما رو تشویق کنه که شاگرد وفادارتری باشین. اما اگه تا کنون اون تصمیم رو نگرفتین آیا امروز وعده ها و چالش های خدا رو خواهید پذیرفت؟ اگه به خدا اعتماد کنین و از اون پیروی کنین اون وعده میده امروز به شما حیات ابدی بده تا برنامه بعدی، امیدواریم که شما برکات خدا رو تجربه کنید و تنها شنونده ی کلام او نباشید بلکه عمل کننده به کلام خدا باشید